السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ و را گذاریم که خداوند متعال به همه من و شما توفیق عنایت نمود تا در این جمع مبارک و در این محفل نورانی محفلی که برای تشویق امت اسلامی علما اساتید عموم مردم در این مکان برگزار شده است خداوند متعال را در برابر این نعمت شکر گذاریم چیزی با قرارت کردن اساتید قرآن عزیم و قاریان محترم و معزز جناب قاری عبدالغفور قاری سپاهی عزیز و قاری صحت که الله جلال به همه ایشان و کسانی که دار دیگر در خدمت شما خوبان خواهند بود جزای خیر عنایت بکند طبق دستور آمدم در خدمت شما الله جل الجلال بزرگترین نعمت را بر امت رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از رسالت سید المرسلین صلی الله علیه و سلام را عنایت نمود هر نبی را الله جل الجلال با معجزاتی تعید کرد اما افضل ترین موجزه بزرگترین تاریخ بشریت تاریخ انبیاء علیه صلات والسلام السلام قرآن است که اعجازش تا قیام قیامت میماند حروفش آیاتش جملاتش تعابیرش پیشنگویش نزیر ندارد الله عزو جلال این کتاب را در برهای از زمان بر محمد رسول الله، ابی و امی و اهلی و مالی و ارزی فداهو انایت که اثر ادبیات اصر, اصر خطاب است ریحانه های چناچبه و عطبه و شیبه اونجا حضور داشتند کسانی که اونجا بهترین جملات و کوتاهترین عبارات و بهترین اشعار را میسرودند اما الله عزوجلال در اون زمان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را آیاتی از آسمان آیاتی از لوح محفوظ توسط جبرائیل امین که بر قلب محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم نازل می کنند الله عزوجلال پیامبر را امت را جامعه را مجموعه‌ای را که در اون زمان و بعدا و تا با این منبع فیاض، با این منبع نورانی حمایت میکنه بسیاری ها در اون زمان آمدن نزد بزرگانشون بزرگان قریش حتی معموریت فرستادن، جاسوس فرستادن که برن تجسس بکنن برن ببینن که این محمد رسول الله چه جملاتی میگوید که همه محق شده در عباراتش بعضیا میگفتن این کلام اجنه است این کلام شیاطینه، این سحره، این جادوه اما وقت اونها رفتن استماع کردند آمدند نزد بزرگان خودشون گفتند اون چرا که ما شنیدیم این قول بشر نیست قول کاهن نیست قول, قول جادوگر نیست این قولی که پیان برای حکم صلی الله علیه وسلم به عنوان قرآن ارائه می این کلام خداوند متعال همون کلامی که از سنگدلان تاریخ نرمدلانی درست می کند اونهایی که با قرآن عمس گرفتند عمر فاروق عثمان غنی، علی مرتزا، سعد و سعید و انسانهایی که تا امروز جامعه بشریت بر وجود اونها افتخار می کند داستان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را شنیده ای وقتی که به او هشدار دادن که تو دیگر نباید در مکه مکرمه تلاوت بکنی چون حلاوت تلاوت صدیق اکبر بسیاری را دور خانه جمع می کرد بعضی صدای ابوبکر صدیق اون قراعت و اون زیبایی که تلاوت می کرد می جذب می جز می شدن تا این حضرت ابوبکر بکر صدیق از رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه هجرت به حبشه را میگیرد اما در وسط رای یکی دیگر از سردارانی که انوز ایمان نیاورده میرود نزد عبو بکر صدیق میگه برگرد به مکه من تامین تو را درست میکنم عبو بکر صدیق برمیگردد به این شرطی که تلاوت نکند مشریکین مکه تامین ابو بکر صدیق را با این دلیل قبول کردن که دیگر تلاوت نکنه ممنوع تلاوت است اما وقتی صدیق اکبر آمد آیات آسمانی را دوباره در مکه مکرمه از خانه شروع می کند تذکر می اون زامن ابو بکر صدیق دیگر اعلام می کند که از این پس من زمانت ترا نمی کنم چون تو شرائط را رایت نکرد از سروران این کلام خدا کلامی که الله عزیزالجلل به مقابله و به چالش طلبید بزرگان قریش را برید سوره مثل قرآن بیاورید. اونها عاجز شدن شدند برید آیه ای برید آجز شدند گفت شما جن و انس جن بشید مثل قرآن آیه درست بکنید نتونستند اما دیدیم یکی بلند شد به زعم خودش آیاتی گفت در رابطه با فیل الفیل ملفیل و ما ادراک ملفیل لو ذنب صغیر اما همه خندیدن امروز وقت تاریخ را مطالعه میکنیم یکی آمد غرباغی را تعریف کرد خودشون گفتن پاره کنید که فردا اونهایی که در آینده می آین بر من و شما میخندند اما الله چه زیبا فرمود الفلامیم کی هیچ کس معناش را نمیداند. همه معب شدند همه موندند قرآنی که خود از خود را تعریف میکنه ذالک الکتاب لا ریب فی هدف الشیع للمتقین کتابی که سر حکمت یاسین و الحکیم کتابی که نور و هدایت را برای جامعه میابرد این هذا القرآن یهدی للتی هی کتابی که الله عزیز جلال میگه هر اکتشافی در هر برهی از زمان به موجود بیاید قرآن پیش رویش را کرده طبیان لکلش راید همه چیز را قرآن تعریف کرده است سر سربنان اگر یک انسان این آیات را حفظ بکند این آیات را به این زیبایی تلاوت بکند چه اندازه خدا اونو عزیز میکنه های آمبر اکرام صلی اللہ علیه وسلم فرمود هر کس یک حرفی از قرآن عظیم و بخواند خدا بهش دهنیکی میده الف لام میم را الله پیامبر برای اکرام اونجا مثال میزنه میگه الفون حرفون لامون حرفون میمون حرفون چند تا نیکی سی سینیکی کجاست مسلمان که یک حزبی بخونه یک جزی بخونه یک پارهی بخونه یک ختمی بکند که امروزه کامپیوترهای روز اونها را عاجزند که بشمارند. پس حافظ عزیز قاری عزیز ولی یک گرامی که فرزند تو در دوران آموزش قرآن بهترین فصله بهترین علمه ام العلومه اما این بزرگترین سرمایه هست وقتی یک کاری اینجا می آید این بزرگترین سروایه اون شهره بزرگترین نعمت اون قوم و قبیله هست بزرگترین نعمت اون جامعه هست که به این زیبا اینجا قرائت می کنن. وقتی انسان این تلاوت را می شنود انسان مجذوب این آیات آسمانی می شود وقتی به بهر صوت و لحن و ترجمه و تفسیر او می رود انسان لذت میبرد از این حضورش نزا امشب، شهر گشت و این دارالعلوم نامدار و این اساتید بزرگواری که اینجا نشسته و علمایی که در جمع حضور دارند همه و همه، این یکی از بهترین لحظات زندگی من و شماست همون لحظه ای که ما به این لحظه باد افتخار بکنیم این لحظات تکرار نشدنی وزا توصیه به اولیاء محترم قرآن عظیم و در خانه نور میآورد در قلب نور می در تحصیل نور می در قبر نور می آبرد سهال ملک نکی منکر آسان می کنه حضور در, رب در, در درگاه الله زلجلال را آسان می و تالی قرآن عالم قرآن قاری قرآن حافظ قرآن را پیامبر. بشارت به بهشت داده معلم قرآن را حدیث رسول الله راویش از رت عثمان زنوره نمی فرماید که پیانبر اکرام صلی اللہ علیه وسلم فرمود خیرکن من تعلم القرآن و علمه بهترین شما سبحان الله بهترین جامعه بهترین امت بهترین امت رسول الله کسیه که قرآن را یاد میدهد قرآن را یاد میگیرد، قرآن را به دیگران آموزش میدهد، سبب یادگیری دیگران میشود، زمینه را برای یادگیری قرآن برای امت و برای نون حالان جامعه فراهم میکند. کند این بزرگترین نعمت است، بزرگترین سعادت است، قرانی که الله زلجلل میفرماید. که الله زلجلال و وسیله این کتاب اقوامی را خیلی بلند مرتبه کرد اونها کیاین از اصل رسول الله صلی علیه و وسلم گرفته که صحابه رسول الله اون چرا که پیامبر از جانب الله دریافت کرد دفتردار رسول الله عزرت زید بن ثابت عزرت امیر معاویه علی رضی الله عنه که دفتردار رسول الله در بخش تحریریه وحی بودند و بعد از اون صدیق اکبر قرآن را جمع بری میکنه عثمان غنی در یک جلد قرار میداد که شرق و غرب قران عالم همون قرآن با همون خط و با همون عبارته اما برید ادیان دیگر را بررسی بکنی. مثالی میزنم مسیحیت را وقتی عیسی علیه السلام را خدا به آسمان برد انجیل مند. یکی از حوارین عیسی علیه السلام پلوس نام داشت انجیل تغییر داد انجیل تحریف کرد که ما امروز در دنیا اناجیل مختلف افتاد نسخه مختلف که شیش نسخه آن مشهوره انجیل برنابا، انجیل مقوقس، انجیل متا، انجیل مرقص و غیره ولی قرآن ما نگاه کنیم صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم که خدا می ای رسول الله من به تو کوثر دادم کوثر چیه؟ کوثر كوصر حوض کوثریم کوثر كوصر دختران رسول الله بنات رسول الله کوثر مهاجرین و انصار دامادهای رسول الله پدر رسول الله کوثر انهایی قرآن عظیم و را جمع کردند و به جامعه تعویم دادن و کسر شما امت رسول الله که امروزه برای این مراسم و برای این بزرگداشت داشت قرآن در این مسجد معروف و تاریخی جمع شده اید و هر کستا قیام قیامت بگه لا اله الله محمد رسول الله مصداق کسر رسول الله خرار مید بی آیات قرآن را بخانیم پیام و عشق ایمان را بخانیم بیا آیات قرآن را بخانیم، پیام و نور ایمان را بخانیم، بود قرآن پیام و نامه دوس، بیا باسوز جان آن را بخانیم. واقول قالی هذا هزا و ما علینا البلاغ المبین، السلام عليكم و الله و